ژن خودخوا نوشته ریچارد داکینز فصل سوم مارپیچای نامیرا ما ماشین بقا هستیم ولی منظور از ما فقط آدمها نیست شامل همه حیوان ها گیاهان، باکتری ها و ویروسها می شود. شمردن تعداد همه ماشینا های بقای روی زمین کار مشکلی است و حتی تعداد همه گونه ها نیز مشخص نیست فقط حشرات رو در نظر بگیریم، تعداد گنا های زنده را حدود سه میلیون براورد کردند و شماره تک تک آنها شاید به میلیون میلیون میلیون برسد. انواع مختلف ماشین های بقا چه از نظر ظاهر چه از نظر اعضای درونی شکل های گوناگونی دارند. هیچ شباهتی به موش ندارد و هر دو کاملا با درخت بلود فرق دارند اما، از نظر شیمی بنیادی تقریباً مانند یکدیگرند دیگرند خصوص از نظر همتاسازهایی که درونشان هست یعنی جنها در اصل یک نوع مولکول در همه ما از باکتری گرفته تا فیل وجود دارد همه ما ماشین بقا هستیم برای یک نوع همتاساز ملکول هایی که DNA نام گرفتند ولی در دنیا برای گذراندن زندگی راه های بسیار متفاوتی وجود دارد و این هم برای استفاده خود ماشین های مختلفی را ساختند میمون ماشینی است که ژن را در بالای درخت حفظ می کند. ماهی دستگاهی است که ژن را در آب نگه میدارد. حتی کرم کوچکی وجود دارد که ژن را در زیر لیوانی حفظ می کند. DNA، عملکرد اسرار آمیزی دارد. من برای ساده‌تر نمودن موضوع اینطور نشان دادم جنها که از دی ای ساخته شدند خیلی شباهت دارند به اولین همتاسازهایی که در سوپ آغازیم بودند. این موضوع در بحث ما اهمیتی ندارد ولی ممکن است حقیقت غیر از این باشد. یعنی آن همتاسازهای اولیه نوعی خیشاوندی با ملکولهای ای داشته باشند. شاید هم چیزی کاملا متفاوت بودند. در صورت دوم شاید بتوان گفت در یک مرحله زمانی دینای باید ماشین بقای آنها را از میدان در کرده باشد اگر چنین باشد باید آن همتاسازهای اولیه کاملا از بین رفته باشد زیرا هیچ اثری از آنها در ماشین های بقای امروزی وجود ندارد در راستای این موضوع آجه کرنز سمیت این نظر غیر معمول را مطرح کرده است که احتمال دارد اجداد ما آن همتاسازهای های نخستین اصلا ملکول عالی نبوده باشند بلکه بلور معدنی غیر عالی ذرات ریز گل بودند دی ای را چه قاسب بدانیم چه ندانیم امروز همه کاره است مگر انطور که در فصل یازدهم به صورت زمنی مطرح می نوع جدیدی از تهاجم و قصب قدرت در راه باشد و دی ای مجبور شود جای خود را به آن واگذارد هر ملکول دی ای یک رشته طولانی از ملکول واحد های ساختاری است ملکول های کوچگی که نیوکلوتید نام دارند، درست مانند ملکول پروتئین، که رشته از آمینو اسیدها هستند ملکول های دی ای رشته ای از نیوکلوتاید دی بسیار ریزتر از آنند که با چشم دیده شوند. ولی با استفاده از روش های غیر مستقیم، کاملا به شکل آنها پی بردن. آنها از یک جفت رشته نکلوتوئید تشکیل شدند که به شکل مارپیچ ضریی به هم تابیدن. این مارپیچهای های دوتایی مارپیچ های همیشه زند، نوکلوید های تشکیل دهنده آنها فقط از چهار نوع مختلف هستند که به صورت کوتاه شده A، ه، سی و جی نامیده میشوند. این عناصر اصلی در تمام حیوانات و گیاهان یکسانند. چیزی که باعث تفاوت می شود، طرز قرار گرفتن این عناصر پشت سر هم دیگر است. واحد ساختاری جی در هر آدم درست شبیه جی در حلزون است. اما توالی واحدهای ساختاری در هر آدم هم با حلزون فرق دارد و هم گرچه تا حدی کم در با آدمای دیگر جز در مورد خاص دو قلوهای یکسان دیان ای ما درون بدنمان زندگی میکند دیان ای در یک قسمت خاص جمع نشده بلکه در تمام بدن درون تمام سلولها پراکنده است بدن یک آدم معمولی از حدود هزار میلیون میلیون سلول تشکیل شده و با چند استثنای قابل اقماز در هر یک از این سلولها نسخه ای کامل از دینهای بدن وجود دارد. دینهای را می توان یک مجموعه دستورالعمل برای ساخت بدن در نظر گرفت که با چهار حرف الفبا نوکلئوتید یعنی A, T, C و G نوشته شده است. به این صورت که انگار در هر اتاق یک ساختمان فوق بزرگ کتابخانه باشد. و در کتابخانه کتابخانه نقشه تمام بنای ساختمان قرار داشته باشد. کتابخانه‌ای که درون سلول است هسته نام دارد. در انسان نقشه بنا شامل چهل و شش جلد کتاب می شود. این عدد در گونه های دیگر متفاوت است. این کتاب ها کروموزوم نام دارند و زیر میکروسکوپ به صورت نخای دراز دیده می و جنها به ترتیب در امتداد آنها ردیف شده اند. تعیین کردن اینکه کجا یک ژن تمام و ژن بعد شروع می شود آسان نیست و در واقع شاید معنادار هم نباشد. خوشبختانه همونطور که در این فصل خواهید دید این مسئله برای هدف ما چندان اهمیتی ندارد. من از قیاس با نقشه ساختمان استفاده و به زبان استعاره را با زبان عادی مخلوط می کنم. گاهی به کروموزوم از کتاب استفاده می کنم اجارتاً گاهی صفحه را به جای ژن به کار میبرم. گرچه تقسیم شدگی ژن ها مثل تقسیم بندی صفحه های کتاب نیست که مرز مشخصی داشته باشد ولی با استفاده از این تشابه حد زیادی پیش می رویم وقتی مطالب به خوبی دست بندی شد بعد استعاره های دیگر را معرفی می کنم در ضمن باید گفت که از معمار در اینجا خبری نیست این انتخاب طبیعی است که دستورالعمل دی DNA ای را گرد آورده است مولکول های دی این ای دو کار مهم انجام می دهند اول اینکه تکثیر می شوند یعنی نسخه ای از خودشان را می سازند این کار از شروع حیات تا کنون بدون توقف ادامه داشته است و حالا این ملکول ها واقعا در این کار خبره شده هند. شما به عنوان یک بزرگ سال بدنی دارید که از هزار میلیون میلیون سلول تشکیل شده است اما در ابتدا فقط یک سلول بوده اید با این محبت که نقشه ساختمان بدن در آن سلول بود. این سلول به دو سلول تقسیم شد و در هر یک از آن دو سلول باز نقشه ای از کل بنا وجود داشت و در تقسیم های بعدی تعداد سلول ها به چهار هشت 1632 و همینطور تا تا میلیاردها رسید در هر تقسیم نقشه‌های دی این ای با امانت تکثیر شد و به ندرت اشتباهی رخ داد موضوع تکثیر دی ان ای بحث است اما اگر دی ان واقعا ای یک مجموعه طرح برای ساختن بدن است چطور این ترها اجرا می‌شوند چگونه آن‌ها به صورت ساختار بدن در می‌آیند این موضوع ما می میبرد به سراغ دومین کار مهمی که DNA ای انجام میدهد. DNA ای به صورت غیر مستقیم بر تولید یک نوع مولکول متفاوت یعنی پروتئین نظارت میکند. هموگلوبین که از آن در فصل قبل صحبت کردیم فقط یک نمونه از طیف وسیع مولکولهای پروتئین است. پیام رمز گذاری شده DNA ای که با چهار حرف الفبای نوکلئوتایی نوشته میشود. با یک روش ساده مکانیکی به زبان دیگری ترجمه می شود. علف این زبان آمینو اسیدهایی که ملکول پروتئین با آن هجی می شود. شاید ساختن پروتئین خیلی متفاوت از ساختن بدن به نظر برسد ولی در واقع نخستین قدم در راه ساختن بدن است. پروتئین ها نه تنها بیشتر بافت بدن را تشکیل می‌دهند، بلکه کنترل دقیقی روی همه فرایندهای شیمیایی درون هر سلول اعمال می‌کنند. به طور گزینشی آنها را در زمانهای مناسب و جاهای مناسب روشن و خاموش می‌کنند. چگونه این کارها در نهایت باعث بزرگ شدن یک نوزاد می‌شود؟ داستانی که دهه‌ها یا قرن‌ها طول می‌کشد تا جنین شناسان از آن سر درآورند. اما واقعیت همین است ژنها ساخت بدن را به طور غیر مستقیم کنترل می‌کنند و تأثیر آنها فقط یک سویه است صفات اکتسابی به ارث نمی‌رسند مهم نیست شما در طول زندگی به چه اندازه دانش و آگاهی دست یافته باشید یک ذره از آن هم از طریق ژن به فرزندتان منتقل نمی‌شود هر نسل جدید از صفر شروع می‌کند از طریق بدن است که ژنها خود را از تغییر حفظ می‌کنند اهمیت این که جنها رشد جنین را کنترل می کنند. از نظر تکاملی است. جنها تا حد زیادی در زنده ماندن خود در آینده نقش دارند. به این دلیل که بقای آنها بستگی به کارآمدی بدنی دارد که در آن زندگی می کنند و در ساختن آن کمک کرده اند. زمانی؟ انتخاب طبیعی زامن بقای همتاسازهایی بود که آزادانه در سوپ آغازین شناور بودند حالا انتخاب طبیعی همتاسازهای را ترجیح میدهد که با مهارت بیشتری ماشین بقای خود را بسازند یعنی ژنهایی که در هنر کنترل رشد جنین واردتر باشند مانند هر زمان دیگر همتاسازها در این کار آگاهی یا برنامه خاصی در پیش رو ندارند همون فرایندهای قدیمی انتخاب خود به خودی بین ملکولهای رقیب یعنی ماندگاری زایایی و دقت مانند نخستین روزهای بسیار دور حیات همچنان کورکورانه و اجتناب ناپذیر در کارند. در جنها هیچ نگاهی نسبت به آینده وجود ندارد و برنامهای مورد نظر نیست. جنها فقط وجود دارد، بعضی بیشتر از بقیه. همین و بس. ولی ویژگی که زامن ماندگاری و زایعی بیشتری یک ژن می شود مانند گذشته ساده نیستند. خیلی فرق کرده‌اند. در سالهای اخیر از حدود 600 میلیون سال پیش به این طرف همتا ساسا به پیشرفتای چشمگیری در فناوری ماشین های بقا از جمله ماهیچه، قلب و چشم دستی یافتند. هر کدام از اینها چندین بار جداگانه تکامل یافتند قبل از این همتاسازها مشخصه اصلی زندگی خود را بسیار تغییر میدادند و این موضوع را باید خوب متوجه باشیم تا بتوانیم بحث را دنبال کنیم نخستین چیزی را که باید در مورد یک همتاساز امروزی بدانیم این است که بسیار اجتماعی است ماشین بقا وسیله نیست که فقط از یک ژن درست شده باشد شامل چندین هزار ژن است ساختن یک بدن کاری دست جمعی و بسیار دقیق است طوری که تقریبا غیر ممکن است کاری یک جن را از جنهای دیگر جدا کنیم هر جن خواست چند اثر متفاوت روی جاهای کاملا مختلف بدن دارد هر بخش بدن تحت تأثیر جنهای زیادی است و اثر هر جن بستگی به تعامل آن با دیگر جنها دارد بعضی جنها نقش رئیس را دارند و کار گروهی ژن‌های دیگر را کنترل کنند. با استفاده از آن قیاس میشود گفت هر صفحه آن نقشه به چندین جای مختلف آن ساختمان مربوط میشود و هر صفحه فقط در صورتی مفهوم است که ارجاع درون متنی به تعداد زیادی از صفحه های دیگر داشته باشد. این وابستگی درونی و پیچیده ژن ممکن است این سوال را برای شما پیش آورد که ما اصلاً چرا واژه ژن را به کار می‌بریم؟ چرا از عبارتی مثل ژن مرکب استفاده نمی‌کنیم؟ در پاسخ باید گفت ژن مرکب اصطلاح به درستی است اما از یک منظر دیگر می‌توان ژن مرکب را به هم‌تراز سازهای منفرد یا جنها تقسیم کرد. این ناشی از پدیده جنسیت است. تولید مثل جنسی باعث آمیخته شدن وزیر و رو شدن جنها می شود به این معنی که هر بدن فقط یک وسیله نقدیه موقت است که در آن جنها به شکل خاصی که زیاد نمی نمیپاید دور هم گرد آمدند نوره ترکیب جنها در آن یعنی عمر افراد را کوتاه مدت است در حالی که خود جنها بالقوه عمری بسیار طولانی دارند مسیرهای آنها طی نسلهای متوالی پیموده می شود. هر جنران می به صورت واحدی در نظر گرفت که از میان نسلهای پشت در پشت گذشته و زنده بانده است. همین قضیه اصلی ترین موضوع این کتاب است که در این فصل آن را باز خواهیم کرد. بعضی همکاران محترم من به شدت با آن مخالفه. بنابراین مرا ببخشید اگر آن را با شرح و تفصیل بسیار بیان میکنم. ابتدا باید چگونگی موضوع جنسیت را به طور خلاصه توضیح دهم. قبلا گفتم که نقشه بدن انسان در چهل و شش جل کتاب آمده است. البته من مطلب را بسیار ساده کردم. حقیقت امر خیلی آور است. آن چهل و شش به صورت بیست و سه جفت کرومزومند. می توانیم بگوییم در هسته هر سلول، دو مجموعه بیست جلدی از نقشه به صورت پروندهی مجزا وجود دارند. می شود آنها را جلد یک علف و یک ب، دو علف و دو ب و همینطور تا آخر نامگذاری کرد. البته اعدادی که من برای مشخص نمودن آنها به کار می‌برم و اعدادی که بعداً برای صفحه ها به کار خواهم برد کاملا دل ما هر کروموزوم را بدون تغییر از یکی از والدینمان ما گرفته ایم که در بیزه یا تخمدان او بودند مثلا جلدهای یک الف دو الف سه الف را از پدر های یک ب، دو ب، سه ب را از مادر در عمل این کار بسیار پیچیده است، ولی بر اساس اصول نظری می شود با میکروسکوپ درون هر که از آن سلول ها را دید و آن بیست و تایی را که از پدر آمده اند و آن بیست و ستایی را که از مادر آمدهاند جدا کرد اینطور که هر جفت کروموزوم همه عمرشان را از نظر فیزیکی در کنار هم بگذرانند یا حتی نزدیک هم باشند پس از چه نظر جفت هم محسوب میشوند از این نظر که هر جلدی را که در اصل از طرف پدر است میتوان صفحه به صفحه نظیر یک جلد خاص است که از طرف مادر است مثلا صفحه شش جلد سیزده و صفحه شش جلد سیزده ب ممکن است هر دو مربوط به رنگ چشم باشند شاید یکی آبی و واندگری قهوهی باشد گاهی دو صفحه نظیر یکسانند اما در بعضی موارد مثل مثال ما از رنگ چشم با هم فرق دارند اگر این دو صفحه دو توصیه متضاد داشته باشند تکلیف بدن در این باره چیست پاسخ متفاوت است گاهی یک خانش بر خانش دیگر غلبه میکند در نمونه که اکنون از رنگ چشم گفتیم چشم در واقع قهوه‌ای است هنگام ساخت دستور عمل ساخت چشم آبی ندیده گرفته شده با این حال دلیل نمیشود که این دستور به نسل های آینده او منتقل نشود ژنی که به این صورت ندیده گرفته می شود ژن مغلوب نام دارد. در مقابل آن ژن قالب را داریم. نسبت به ژن آبی که مغلوب است ژن چشم قهوه‌ای قالب است. کسی دارای چشم آبی خواهد شد که هر دو نسخه صفحه مربوط به توصیه در مورد رنگ چشم و رنگ آبی متفققلقول باشند. بیشتر اوقات که دو ژن نظیر مانند هم نیستند. نتیجه حاصل چیزی بینابین است بدنی که ساخته میشود یا طرحی بین آن دو دارد یا چیزی کاملا متفاوت است وقتی دو ژن جن، مثل ژن جن آبی و قهوه‌ای برای بدست آوردن یک جایگاه واحد روی کروموزوم با هم رقابت می‌کنند آلل یکدیگر نامیده می‌شوند در هدفی که ما داریم واژه علل مترادف است با رقیب کتابهای نقشه آن ساختمان را در نظر بیاورید یا فرض کنید که شیدازی سستی دارند به طوری که ممکن است صفحه ها جدا و جا, به جا شوند هر جلد 13 باید یک صفحه 6 داشته باشد ولی بیش از یک صفحه 6 وجود دارد که ممکن است بین صفحه های 5 و 7 قرار گیرد یک روایت میگوید چشم آبی یک روایت احتمالی دیگر میگوید چشم قهوه‌ای با این حال روایت دیگری در آن جمعیت هست که رنگ‌های دیگر مثلا سبز را توصیه می‌کنند شاید نیم دوجین آلل دیگر که می‌تواند در جایگاه خاص صفحه 6 روی کروموزوم 13 بنشیند در آن جمعیت پراکنده باشد هر آدم فرزی دو جل کروموزوم 13 دارد بنابراین می می‌تواند دو آلل برای جای خالی صفه 6 داشته باشد ممکن است مثل یک آدم چشماوی دو نسخه از یک یک یکسان داشته باشد یا دو آللی را داشته باشد که از میان نیم دو جین دیگر که در آن جمعیت است انتخاب شده است البته آدم نمیتواند برود از میان خزانه کل ژن موجود برای خودش ژن انتخاب کند در هر زمان خاص همه ژنها محکومند به اینکه درون ماشین بقا باشند ژن ما تقدیر ما هستند و ما در این بار کاری نمیتوانیم بکنیم در هر حال همه ژنهای های کلی یک جمعیت را در درازمونندت به عنوان خزانه ژن در نظر می گیرند. این عبارت در واقع یک اصطلاح فن است که متخصصان ژنتیک به کار میبرند. این اصطلاح تصویر ذهنی باارزشی اززیرا در لقاه جنها با هم آمیخته می شوند البته به صورتی کاملا سازمان یافته. بخصوص همونطور که خواهیم دید چیزی مثل گسیختن شیرازه، و جا به جا شدن صفحه ها واقعا صورت می گیرد. پیش از این شرط دادم چگونه یک سلول به طور طبیعی به دو سلول جدید تقسیم می شود و به هر کدام از آنها یک نسخه کامل از آن چهل و شش می رسد. این تقسیم عادی میتوز نام دارد. اما یک نوع دیگر تقسیم سلولی نیست هست که میوز نامیده می شود. این نوع تقسیم فقط در تولید سلول های جنسی رخ می دهد. اسپرم و تخمک در میان سلولها منحصر به فردن. از این نظر که بهجای چهل وشش تا بیست و سه کروموزوم دارند این درست نصف چهل تاست. برای اینکه وقتی در لقاه جنسی ها ترکیب میشوند که فرد جدید را بسازند حسابش راحت باشد میوز یک نوع خاص از تقسیم سلول است که فقط در بیزه و تخمدان صورت میگیرد که در آن یک سلول با مجموعه دوتایی چهل و شش کروموزومی که دارد تقسیم می شود و سلول های جنسی را تولید می کند که هر کدام فقط یک مجموعه بیست و ستایی دارند من از تعداد کروموزوم های انسان برای مثال استفاده کردم هر اسپرم با بیست و کروموزومی که دارد از طریق یک سلول چهل و شش کروموزومی به شیوه میوز در بیزه ساخته می شود. کدام 23 کروموزوم در هر سلول اسپرم قرار می گیرد؟ نباید 23 کروموزوم به طور اتفاقی انتخاب و وارد اسپرم شوند؟ نباید اینطور باشد که سرانجام درون اسپرم دو نسخه از جلد 13 باشد و جلد 17 وجود نداشته باشد. از جنبه نظری ممکن است در یکی از اسپرم های یک شخص همه 23 کروموزوم از یک والد مثلا مادر باشد مثلا جلد های یک به دو به تا بیست و به در چنین رویداد نادری دختر بچه‌ای که از این اسپرم تولید می شود، نیمی از جنهایش را از مادر بزرگ پدری برز برده و از پدر بزرگ پدری چیزی به او نرسیده است اما در واقع تقسیم به این صورت بی نیست که کل کروموزوم از یک طرف منتقل شود واقعیت کمی پیچیده تر از این است یادتن است که کتاب های کروموزوم شیرازشان سست بود در چنین حالتی ضمن تولید اسپرم یک یا چند صفحه ممکن است با هم از یک کتاب جدا شوند و درون کتاب دیگری جا بگیرند بنابراین ممکن است 65 صفحه اول یک اسپرم خاص از جلد یک علیب و صفحه 66 تا آخر کتاب از جلد یک ب باشد 22 جلد دیگر موجود در این اسپرم هم به روشی مشابه به این ساخته می شوند. بنابراین هر سلول اسپرمی که یک فرد می یک چیز منحصر به فرد است حتی اگر همه اسپرم های 1 و 23 کروموزوم خود را فقط از یک مجموعه یک کروموزوم 46 هایی گرفته باشند. در تختان، تخمک ها هم به همین طریق ساخته می شوند و همهشان منحصر به فردند. از سازوکار واقعی این آمیختگی آگاهی تقریبا خوبی داریم ضمن تولید یک اسپرم یا تخمک بخشهایی از هر کروموزوم پدری خود را جدا و دقیقا جای خود را با نظیر همان بخش از های مادری عوض می کنند یادتان باشد ما در مورد کروموزومهایی صحبت می‌کنیم که در از والدین کسی آمده که آن اسپرم را میسازد یعنی از پدر بزرگ پدری بچه ای که در نهایت از آن اسپرم بوجود میآید. پرایند جابجا به جا شدن بخشه چلیپایگی نام دارد. Crossing over این موضوع در تمام بحث های این کتاب مهم است. به این معنی است که اگر شما با یک میکروسکوپ به کروموزوم‌های درون یکی از اسپرم ها، یا اگر ما هستید تخمک های خود نگاه کنید و بخوایی تشخیص دهید کدام از طرف پدر و از طرف مادر آمده اند بی جهت وقت خود را طلب کرده اید این با وضعیت سلول های عادی بدن در تقابل آشکار است به صفحه 62 رجوع کنید هر کروموزوم چلتکه یا است از جنهای پدر و مادر در اینجا به قیاس ژن با صفحه می رسید. در کتابی که شیرازی آن شل شده می شود تمام یک صفحه را برداشت اضافه یا جابجا کرد ولی نه بخشی از یک صفحه را اما ژن مرکب فقط یک رشته دراز از صرف است و اینطور نیست که در صفحه های جداگانه تنظیم شده باشد یقینا اول و آخر هر زنجیره پیام پروتئینی نماد خاصی دارد که با همان الفبای چهار حرفی پروتئینها ها نوشته می شود بین این دو علامت سجاوندی دستور عمل ساخت پروتئین رمزگذاری شده است میتوانیم ژن را توالی حروف ناکلوتایدی که بین علامت ابتدا و انتها قرار دارد و رمز زنجیره پروتئین است در نظر بگیریم باشی سیسترون را برای واحدی که چنین تعریفی را دارد به کار میبرند و بعضی ها جن و سیسترون را به جای هم به کار میبرند ولی چلی پایگی مرز بین سیسترون ها را رایت نمی کند جدا شدگی ممکن است درون سیسترون ها یا بین آنها صورت گیرد. مثل این است که آن نقشه ساختمان را نه روی صفحه های جداگانه بلکه روی چهل و شش نقطه یک نوار کاغذی نوشته باشند. اندازه طول سیسترون ها ثابت نیست. تنها رایی که معلوم می کند کجا یک سیسترون تمام و سیسترون بعدی شروع می شود خاندن نشانه های روی آن نوار کاغذی و گشتن به دنبال علامت اول پیام و آخر پیام است. چلیپایگی عبارت است از مبادله دو قطع از های همانند پدری و مادری بر اثر شکستن و اتصال مجدد آنها صرف نظر از اینکه چه مطلبی دارند.